هرگزم تو از لوه دل و جان نرود هرگز از یاد من آن سر به خرامن نرود از دماغ من سرگشت خیال دهنت به جفای فلک و غصه دوران نرود در ازل بست دلم با سر زلفت پیبند تا عبد سر نکشد و سر پیمان نروَد هر چه جز بار غمت بر دل مسكين من است برود از دل من و از دل من آن نرود آن چنان مهرت و ام در دل و جان جای گرفت که اگر سر برود از دل و از جان نروَد گر رود از پی خوبان دل من معذور است درد دارد چه کند که از پی درمان نرود هر که خواهد که چو حافظ نشود سرگردان دل به خوبان ندهد و از پی ایشان نرود